بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد سيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد همچنان بحث إسراء و معراج رسول الله صلى الله عليه وسلم هل سألتني كارو من سأل مباحث إسراء و معراج كفتني در سيارزيادها في بحث إسراء بحث إسراء و معراج تا از 10 تا هم ادامه پیدا بکند چون جلساتی که ما در نظر گرفتیم فیلم شبه پنجم واجومه فقط 10 دقیقه بیشتر نیست. <تصفيق> هرچند که دوستان تقدّر دارند که از 10 دقیقه بیشتر بشه تا داخل دقیقه لیکن ما به خاطر که بیشتر دوستان وقتشون دارن از بازار یا از بیگرنگ سعی میکنیم که در 10 دقیقه خلاصه بکنیم. هرچند که ولی سعی ما در از محمد صلی الله علیه و سلم سخن بگوییم چون مجالس نیست که از این شخصیت بزرگ بهترین و مکرم‌ترین بشر سخن بگوییم بخاطر همین است ما وظیفه خودمون دونستیم که بیام از سیرت معصر الله صلی الله علیه و سلم سخن بگوییم ما دیشب گفتیم وقتی که براق جبرائیل او را میگیرد تا بیاد رسول الله صلی الله علیه و سلم بر ایشان سوار بشود کمی تکان میخوند جبرائیل به براق میگویند مکرمتر از مصطفی بر تو سوار نشده است اونجا براق گریه میکنند عشق میریدند بله این تکریم خداوند. این بزرگی خداوند در حق مصطفی صلی الله علیه و سلم خدا میخواد به ما درک تایی بدهد این دابه و این حیوان وقتی که میشنود که این مکرم ترین از استکان می عشق اشکی می لیکن ماها وقت خودمونم شاید ندیم که سخن مصطفی صلی الله علیه و سلم وقت خودمون خیلی جایت از تو هست ما باید عشق بریدیم چه کسانی که وقتی که بهشون میگی سنت مصطفی صلی الله علیه و سلم چنینه میبین مگر پدران ما اشتباه کردن مگر فلانه و فلانه یک از دستان میبین من به بچه های یاد میدادم گفتم که در حدیث در صحیح بخاری اومده است که رسول الله صلی الله علیه و سلم مات چنین میکردن از ابتدای سرشون تا آخر. یکی دادش بیرون اومد که چرا داری بچه ها را گمراه میکنی سبحان الله سنت مستفى صلی الله علیه و سلم گمراهی اگر رسول الله صلی الله علیه و سلم آن را انجام نداده بودن بله لیکن این چیزی هست که ثابت است از رسول الله صلی الله علیه و سلم و ما هم وزیفمون اگر حدیث صحیح و ثابت است دیگم چش لیکن در مذهب این اومده ایمه جایز ایم دونستن که تا یک تب و بیکن انسان صدای خودش را بر حدیث رسولتن بالا ببرد و خداوندم دسیور لا شرف اثبات کن فوقتوتن نبی صدای خودتون را بر صدای الله بالا نبرید انسان به خوش اینچنین اجازه بدهد خیلی جای تأسخ هست که انسان اینچنین به خودش اجازه بدهد این یک مسئله که دیروز گذشت و این روزم تذکرش داریم مسئله دوم در بحث اصراع و معراج پار ما یک سخنانی در همین مسجد،, مسجد داشتیم از بحث عظمت الله جل شعنه و دفتیم که الله جل شعنه اون چیزی که ما آموختن در مدارس با این اشتباه جواب داده، این است که ما افته خداوند همه جا هست ما گفتیم از قرآن و از سنت اینی که این اصطلاح رو درست بکنیم خداوند نزدیک به ما هست ولی همه جا بودن ای کلمه درست و مرکبی نیست چون خداوند در قرآن الرحمن و علی العرش استوا الرحمن ولی عرش مستوی بالعرش ما گفتیم وقتی که رسول الله صلی که سیلی میخورند سوال میتوی خداوند کجا هست بییت الله بالای آسمان ها؟ این چیزی که هست در سنت متهم حدیث در صحیح بخاری هست. و رسول الله میگه اعتقاف انها مؤمنه اون که سیلی بود می بییت آزادش بکنه چون این ایمان دارد به خداوند ما نزدیکی خداوند قبول لری هر کجا بریم به ما از دیگر حتی که این آیه در کن ملاکات و نح من حبل الورید اذ تلق المتلقیان عن اليمین و عن الشمال القیم و نح نما مذکر هست اقرب ایله من حبل الویت ادریق علنا نزد سریم وقتی فرشتگانی چاه برآت نشاستن و اعمال مشکر من بنده کن عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداع اذا دعان اگر بندگان از من سوال کردن بگو من نزدیکم و هم گفتیم چطور قدم من نزدیکه رسول الله صلى الله عليه وسلم و سنت مثال میدن يعني اگر حلقه یک حلقه کوچکی انگشتری در یک سرزمین پهناور بیانداری آسمانها و زمین تمامی آسمانها تمامی مخلوقات مثل اون حلقه در مقابل اون سازمین زمین پهناور تا این آسمان و زمینها در مقابل کرسی خداوند مثل همین حلق حلقه در یک سازمین زمین پهناور یعنی آسمان و زمین یک حلقه و کرسی خداوند مثل اون تذ زمین و کرسی در مقابل عرش همون حلقه در یک تذ زمین و همه اینها چیزی به حساب نمیان در مقابل الله جل جلاله مخلوقاتی چیزی نیست تکره الله صلی الله علیه و سلم از عظمت الله جلین میگوید لو اشرقت صبحات وجه حدیث در مسلمه لو اشرقت صبحات وجه هی لا احرقت مدده سرهی من خلقه اگر یک پرتوب شعاع وجهه الله جل شانو اوبور بکند از آسمانها تمامی مخلوقات آتش میگیرند باید ادعا دارم معاد الله من با خودم شنیدم همین امثال شنیدم یکی میگفت بله چه معانیه از خدا در منم باشه در سگم باشه همه جا هم باشه باش معاد الله الله خدا من در طوالت و و در حیوانات باشد در, در نجاسات باشد خدا من پاکم و نزد من در منی که در شکر من نجاسات هست الله جل شانون باشد خدا من نزدی هست چون عظیمه بزرگه مخلوقات چیزی که حساب نمیانه لیکن همه جا بودن این خدا رو کوچک کردیم مخلوقات كي يك نور رو تحمل نداران كتور ميتواناً عزمت الله رو تحمل مكنت موسى عليه السلام وقت كي مجال رب ارني انظر اليك قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فأمر دقار بخام ترى ببينم نقول انك رو مكن اگر استاد مبيني ثين السماء كان هو كذا تجلى يصيبني فجعلنا ربّه للجبل جعله دكا وخر موسى فاعقا ذلك خدامن تجلي كرد ذلك خدامن یک نورش عبور کرد از جه گشانها کوه دگرگون شد و تحمل نادورانتية. تحمل كلام الله رو نادراً تحمل القرآن رو مخلق لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله أقول إن القرآن ظبر كوها نازل بكاذيف كوه دقار دمي شوت كوه دقار دمي شوت كوه تحمل تخلق الله رو نادراً شبرتك بعضاً الله بعدها نمي دونام قلب شو المريضات جون نمیدونم دونم حرف را بد بفهمند ما با این احادیث و بینات داریم صحبت میکنیم از جیب خودم بیرون نمی آوردم نمی مودم نمی 왔 نمی آمد که اینجور جهنم بکنم این احادیثه و این اسرا و که ما در بحث صحبت میکنیم اگر خداوند همه جا هست چه شعنی دارد و چه حکمتی دارد که رسول <سؤال> الله صلی الله علیه و سلم از مسجد الحرام بنان بشوندن برن با آسمان الله جل شانه این درسی در همین سیرت مصطفی الله عليه و سلام در همین این درسی هست وقتی که الله صلی الله عليه و سلام میرا به جایی که جبرئیل می بیاد من رسول الله صلی الله علیه و taala از می بیاد سوال کرده الله صلی الله علیه و سلام آیا وقتی که رفیق و اصحاب اونها جایی که هیچ پیامبری بود پروردگار رسول الله صلی الله عليه و حجاب به نور حجابش نورت بین من و الله نوری بود چگونه الله را ببینم بین من و الله رول بود بله معلوقات در دن این دنیا مستحقش نیست که الله را خداوند خدا من گذاشته خدشو پمهان نگه داشته تا ببیند آیا ما بهش ایمان داریم یا نه این گذاشته برای روز بزر آخرت بزرگترین نعمتی که خداوند گذاشته برای روز آخرت نعمت رؤیت رو رو و نظر و وجه الله بر رسول صل الله صلی الله علیه و آله همیشه از خدایان غیرت کرد و ولاتبر کرد این اهل اون میخواستن اللهم متعنی بالنظر الى وجهك الكريم خدایان دا به من خوشی لذت نگاه به چهره تو رو بده این بزرگترین نعمت آسمون و زمینه این بزرگترین نعمت و بزرگترین منته تو برسه مؤمنان فقط فقط مؤمنان این چیز نعمت رو فقط انداز که خدای من ما رو محروم نکنه از این چیز نعمت این در واقع در بحث اطراو و معراج بحث خیلی هست خیلی از بحثه هست در بحث اطراو و معراج هنوز بحثه هست در هم طور که گفتم الله ده دقیقه ده شد لیکن خیلی از مباحث هست که باید گفته بشه ما اگر بخواهم همین ده دقیقه خلاص بکنیم خیلی از مباحث بین لیکن بعد از مباحث خیلی مهمی که الله هست امشب تذکر بهش بدیم بس الله صلی الله علیه و سلم بیگوید وقتی که ب و فرشتگان آوردند به من سه لیوان یک لیوان عسل دیگر لیوان خمر مشروب و دیگر لیوان لیوان سوم شیر بی بیعت الله صلی الله علیه را انتخاب کردم و به من گفته شد تو فطرته انتخاب کردی فطرته رو انتخاب کردی فطرته الله الذي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ما در همین بحث بحث و اینجا خواهد و ببیدم به این حدیث فترت فترت را انتخاب کرده ای محمد فترت را انتخاب کرده یعنی چی؟ یعنی فقط تو ای محمد هستی که در این روی در, در روی زمین تنها کسی هستی که دعوت به توی حق میدهی هیچ کسی غیر از تو نیست که دعوت به توی من بدهی فترت اون چیزی که خداوند در نفس انسان نهادی نکرده چی هست؟ و این اخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم على انفسهم الاسدو به ربکم قالو شهدنا وقتی که قدابن آدم را خلقت کرد از فرزندان آدم جهنمیان و بهشتیان انتخاب کرد و گفت ای بندگان گراف بگید اون روزی که ما نمیدانیم چه روزی بوده هد لیکن در نفس من در قراری قلب این چیزو احصاف میکنیم خداوند اون روز وقتی که آدم را خلق کرد ما را جلو خودش گرفت و گفت به بندگان گاهه بدید که من بروردگارتون هستم و معبود حقم، پال و شهد نه گفتند که ما گوا میدیم این خداوند از حکایتی که خداوند نقد کند برای ماها. شما نگاه بکنید ما در نفس خودمون اینجوری وقتی که در غمی میوفتیم اندوهی میفتیم این بحث فر رو میخوام بکنم. وقتی که انسان، در کشتی میخواد غرب بشه سوار قایقی هست دیگه هیچ دیگه غیر از خداوند نیست که ازش بخواهی انسان در یک مشکلاتی در یک مسیبتی میفتد خود به خود در نفسش احساس نیاز میکند که بله یک شخصی قدرتمند هست که میتواند او را نجات بدهد نگاه بکنید یکی از مسائلی که دلالت و گواه میدهد بر این که پترتی در نفس ما هست که گواه میدهد بر یک بکنید فرسی نگاه بکنید. در هیچ کجا نیست که کسانی نباشند که خدایانی نداشته باشند. مگر ازره کمی که در این عصر حاضر آمدند، از هومنیستا اونجا بودا فرستیده میشه اونجا مسیح فرستیده میشه یهود فرستیده میشه هزاران اله و بطا هستن که فرستیده میشه من به جای خداوند پس خدایی هست که باید نفس انسان احساس نیاز میکند که باید فرستیده میشه لیکن بندگان آمدن و این فترت کردند. كل مولود يولد على اسمام من مولود إلا يولد على على الفطر هاموس كذا الحديث أبو صحيح بقول ذلك ما من مولود إلا يولد على الفطر فابو فابوهو يهودانه هو مجدانه هو نصرانه هش مولود نسك مع ذلك رؤية فترات خلقه مجابد رؤية كفرات خلقه مجابد فدارشان هس في أورا قبراه ميكونت فدارو ما دار هس أن في أورا بسويه يهودية ونصرانية ومجدية مكشانت پدران اونها را دوباره میکنند الان محمد اومده است که این فترت گمراه با انتخاب فترت و اون شیر این امت را این های گمراه را نجات بدهند و بر بگردانند هایی که خدایان با میپرستن یک خدا را بپرستند الله را قدراستان این است بی که میگویم صلی الله علیه و فترت انتخاب کردند تا امت فاطری و امت مکتوری داشته باشند امتی که روی فطرت و روی یکتاپرستی و روی تعظیم الله باشد این هست از وسائل و از هایی که در, در سیرت مصطفی صلی الله علیه و salam نکات و در تا زیاد است که ان الله بتوانیم حق سنت مصطفی صلی الله علیه و سلم را ادا بکنیم حق است در گردن ما خداوند بی عود نازل نکرده است فرشتگان را همینطوری نفرستاده است و ما ینتقو عن الهوا ان هو الا وحی يحيى ان هو الا وحي يحيى رسول الله صلى الله عليه وسلم اضل شقنا نبيا بل كان وحي من جانب الله ما قبل دارين وغواه مدين كرسول الله صلى الله عليه وسلم برحق قد وان شي گفته صدق و بتوي حقم فاهم رب سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت و اصف على محمد واله محمد